بسم خب. الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اینه خیر و ناصر المؤمنین و صلی الله علی سیدنا محمد و آلیه تاهرین اللہ ماشواللہ و آلیه محمد هفته گذشته البته من آمدم دانش کده ولی احساس کرد که زمینه ای برای تشکیل کلاس نیست یه یه چهار نیم ساعتی نشستم و معتر شدم و بعد یه خود بچه‌های آموزش به من گفتن آها شما برو ما آره، یه امام رفت بیشه به داخلته منظورم اینکه بنده آمن هم دارش کرده که اگر کلاس تشکیل بشه کلاس باشن در واقعه شما که کسیم که نه باید شما اگر نبودی تشکیل می بودم آره دیگه همیتورم هم آره، دیگه درخوادم البته من نس فقط برای کلاس شما از ساعت سه سه و نیم اینجا بودم که آره باید که کلاس تشکیل نشون خب رفتیم خب من تصمیم گرفته بودم که بعد از چند هفته که در خصوص نقشه حدیث در تفسیر با شما سخن گفتم در جلسه امروز و احتمالا هفته آینده در ارتباط با نقشه حدیث در علم کلام با شما سخن بگویم و یه مقداری در جلسه امروز نوایت با علم کلام و سابقه پیدایش اون در جهان اسلام یک آشنایی مختصری به هم بزنیم و نمونه‌هایی از احادیث کلامی که منشأ بحث‌های کلامی شده. اینا رو براتون بگیم. بعد من یک کتابی به نام عملیه شیخ صعود رو با خودم آوردم که یک قطعه‌هایش رو ان براتون می‌خونم که شما نقش حدیث رو در کلام و علم کلام مشاهده میکنی و امشاللت در جلسات آینده و یه مقداری بعضی از منابع روایات کلامی رو براتون معرفی میکنن و رابطش رو با مسائل علم کلام در معرفی اون منابع نشون خواهم داد که شما کاملا نقشه حدیث رو در علم کلام یه باورتون بشه و درک بکنید خب من مطلب را از اینجا آغاز می که یکی از علوم اسلامی علم کلامه که البته کلام اسلامی معروف. مراد از علم کلام دانش‌های اعتقادیه ما در قسمت دانش‌های اعتقادی که حالا متکفل اثبات وجود خدا یا مثلا فلسفه خلقت و اینونه موارد هست دو تا علم داریم یکی علم کلامه که متکفل اثبات یک عقایدیه و دیگری علم فلسفه است که اونم متکفل بلاخره اثبات مسائلیه اما فرق علم کلام و علم فلسفه در اینه که در علم کلام ماده استدلال آیات و روایاته ماده استدلال آیات و روایاته. یعنی شما در علم کلام مثلا میگید, میگید که خدا منظه از جسمانیت بعد میگید به این دلیل که خودش فرموده سبحان الله اما یسفون یه عقیله رو بیان میکنید میگید به این دلیل که خودش میفرماید یا مثلا فرض کنید میگید که خداوند منزهه از این که داشته باشه و الههی همراهش باشه میگید خب چرا تو یه حرف میزنید به چه دلیل حرف میزنید یه به این دلیل که خودش میفرماید که لَوْكَانَ فِيهِ مَا آلَهَتُونَ إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا دلیلش رو از قرآن میادی یا مثلا به این دلیل که امام علی در نحج الولاغه در نامه سی میفرماید که به پسرشون، خطاب به پسرشون که ای پسرم اینو بدان که اگر که خدای متعال شریکی داشت و هم عرض ایشون خدای دیگری وجود داشت لعنتت که رسولا رسول اون پیامبران اون خدا هم میامدن برای تبلیغ واضیه خدای دومی در مقابل خدای واحد صحبت میکردن و لرعیت آثاره ملکی و تو میتونید چیز آثار ملک اون خدای دوم رو ببینی اما خدا واحده همه پیامبران هم از یه خدای واحدی حرف زدند یه از دوتو خدا ستو خدا حرف رو زدند اینجا شما بر وحدانیت الهی از قرآن دلیل میارید یا از حدیث دلیل میارید این علم کلامه که در علم کلام ماده استدلال آیات و روایاته پس علم کلام علم اصول عقاید همین اصول عقاید توحید نبوت معاد برحال عدل امامت اینطوری که حالا مثلا شیعیان میگن اصول دین 5 تا است این از کنم خدمتتون علم کلام علم کلام یعنی همون علم احاید آموزش احاید الان ما در زمان خودمون بهش میگیم آموزش عقایل اسلامی مثلا میگیم اصول دین بعد اصول دین همون علمی کلامه فروع دین فقهه که حالا ما درباره باره فقه قبلنی صحبت کرد. اه. اما فلسفه یک علم استدلالیه که در اون ماده استدلال براهانهای عقلیه رهانهای عقلیه مثلا ما در فلسفه میاییم از علت و معلول حرف میزنیم و اینکه هر معلولی نیاز به علتی دارد و اینکه در سلسله علت و معلولها دور و تسلسل باطل است و نهایتا سلسله ها باید به علتی برسد که او دیگر معلول نیست یعنی علت الهلال که بهش میگن واجب الوجود یا علت نخستین به تمامی حرفان که من زدم که استفاده کردم نه از, حدیثی. از یک بخش عقلی حرف میزنم میگم بنابر امتناع نقیزین بنابر ابتال دور و تسلسل اینا دلایل عقلیه که معمولاً بحث هایی که ماده استدلال در اون دلایل عقلی صرف باشه یا بدیهیات عقلی صرف باشه اینو میگن فلسفه ولی علم کلام یک علم استدلالی حقیقتا ما در علم کلام هم باز یه چیزی رو باید ثابت کنید یه چیزی رو باید نفی کنید اما شما در علم کلام میتونید از آیه قرآن به عنوان دلیل استفاده کنید میتونید از احادیث پیغمبر یا احادیثی که حالا مورد قبول طرف بحثتونه به عنوان دلیل استفاده بکنید این راجع تعریف علم می کرد. این که چرا به این علم علم شلام گفته میشه و شاید به دلیل اینکه این دانش در قرن‌های اولیه از طریق مناظره و گفتگو شکل گرفته یعنی مسلمانان در برخی از مسائل اسلامی با هم بحث می‌کردند و با هم به تکلم میپرداختن و بعضیها میگویند که مسئله علمیکلام در قرن دوم اونم در شاگردان امام باقر و امام صادق یک اوجی داشته و امام صادق مثلا به بعض از اصحاب خودشون میگفته که فکلم یا فتکلالم مافنانی یعنی در این موضوع برو بفلانی حرف بزن بنابراین وجه تسمیه علم کلام از همون تکلم و سخن گفتن اخذ شده که حکایت از سخن گفتن مسلمانان مثلا رؤسای مذاهب اسلامی بزرگان اسلامی با یکدیگر در مناظرات بوده در مناظرات بوده مثلا یکی از متکلمان بزرگ در شیعه شیخ مفید که ابن الندیم وقتی که میخواد شیخ مفید رو برای ما معرفی بکنه میگه ریاست متکلمان بغداد چونه، چونه، چی؟ چونه، چونه، ندیم. ابن الندیم ابن ندیم کتابی داره به نام الفهرست الفهرست خب میگه ریاست متکلمان شیعه در غنش آروم به شیخ مفید رسیده یا مثلا درباره شیخ توسی که حالا شیخ توسی شاگرد شیخ مفیده میگهد ایشون صاحب کرسی کلام بوده کرسی کلام کرسی کلام به معنای اون جایگاهی که در زمان مناظره شیخ توصی بر اون می نشسته جلوس می کرده پس بنابراین یواش یواش کلام تبدیل میشه به یک اصطلاح و یک ایده رو که ورزیده بودن در علم کلام اصطلاحا میگویند متکلم و بد و دانشی که شکل میگیره این دانشو میگن علم کلام دانش کلام یا علم کلام حالا دقت کنید همونطور که ما کلام اسلامی داریم کلام اسلامی داریم از آنجایی که مسلمانان تبدیل میشن به فرقه های مختلف هر فرقه ای یک کلام ویجه ای به هم میزنه مثلا کلام شیعی، مثلا کلام سنی حالا تازه تو خود سنی میگیم کلام معتزدی کلام اشعری کلام عرصود مرجعی مال مرجعه در فرض بفرمونید شیعیان میگیم کلام زیدی میگیم کلام واقفی بعد میگیم کلام اسم عشعری. یعنی در شرایطی که ما میتونیم یک عقایدی رو به کل مسلمانان نسبت بدیم به عنوان کلام اسلامی در درون مسلمان ها که بحث فرقه‌ای پیش میاد هر فرقه ای یه عقایدی داره که اون عقاید میشه کلام خاص اون فرقه و حالا تازه یه مطلب دیگه‌ای هم بگم اگر بپذیریم که حالا جدای از اسلام مسیحی ها برای خودشون اقایدی خب خود میتونیم بگیم کلام مسیحی مثلا خدا در کلام مسیحی خدا در کلام یهودی حتی اینوی که من میگم وجود داره یعنی مثلا ما کتابهایی داریم در زمینه کلام مسیحی کلام یهودی در اسلام که اله ماشاءالله حالایی که جلو میریم مسائل روشن میشه خب چرا علم، علمی به نام علم کلام در اسلام به وجود میاد؟ اگر ما به قرن اول مراجعه بکنیم میبینیم در زمان رسول الله دانشی به نام دانش کلام یا دانش عقاید خیلی موضوعیتی نداشت در زمان رسول الله خب در زمان رسول الله که یک جامعه مسلمان ها داشتن جامعه ای ساده و احیانا اگر در زمینه آیه ای یا یک مساله سوالی برای کسی پیش می آمد پیامبر اسلام که مرجع بود در بین مردم بود مراجعه می‌کردن سوالی رو می‌کردن خیلی وقت که سالات که می کردن اصلا آیه ای از قرآن برش نازم می شد یا سالونکه یا سالونکه یا سالونکه قل قل قل یا شاید خود رسول الله پاسخ میدادند و مثلا حل می شد و اصلا دیگه جایی برای بحث و گفته او و احتمالا مناظره های مذهبی اصلا پیش می بیان من ولی در زمان رسول الله زمینه ای برای شکل گیری دانش به نام دانش کلام اساسا وجود نداشت. اما بعد از رهلت پیغمبر که حالا پیغمبر برنوان یک مرجع بزرگ فکری از دسترس مردم خارج شد به دو دلیل دانشی به نام دانش کلام در غرن اول به خصوص اواخر غرن اول به دو دلیل دانشی به نام دانش کلام به وجود میاد که یه دلیلش دلیل داخلی نسبت به مسائلیه که در داخل مسلمانان میگذره و اصاسا منشع خارجی ندارد و یه دلیلش دلیلیه که مربوط به منشع خارجی زمینه های پیدایش علم کلامه که مربوط به اختلاف مسلمانان با غیر مسلمانان که یکی یکی توضیح میدم اما اونی که مربوط به داخل مسلمانان میشه شما میدونید که بعد از رهلت پیامبر اسلام مسلمانان در قضیه جانشینی رسول خدا خب به دو تفکر گرایش پیدا کرد یه دعی معتقد بودن که جانشینی رسول الله یک امری منصوص و مجعول به جعل الهیه منصوص یعنی ما نس داریم در مقابل دربارش و مجعول به جعل الهیه خب اینا کسانی هستند که بعدها شدن شیعه شیعه علی که پیروان علی و اده از مسلمانان باورشون بر این بود که امر تعیین جانشینی رسول الله به مردم باگدار شده حالا این مردم یا به شکل عمومی یه کسی رو باید بنوان خلیفه انتخاب کنند یا به شکل خاستر مثلا یه شورایی که شورای حل و عقده یا اهل حل و عقده مسائله یه نفری رو بروان خلیفه انتخاب بکنن باش بیعت کنن مردم هم بیان با منتخب این شورا بیعت کنن که در محلی به نام صقیفه ادهی جمع میشن و بحث و گفتگو و برحال مباحثات زیاد از توی اون سقیفه ابوبکر عنوان خلیفه اول انتخاب میشه این در شرایطیه که خب همه جامعه اجماع نداشتن بر خلافت ابوبکر لااقل یه ایده یه فکر یه معتقد بودن نظام امامت بر حال یک مقامی است که خداوند باید تایید کنه حالا صرف نظر از اینکه حق با که ما تو این کلاس در مقام داوریه بین شیعه و سنی سین فقط داریم گزارش میدیم میشه گفت که اولین مسئله کلامی در اسلام برمیگرده به مسئله امامت و خلافت یعنی جانشین پیامبر باید در نظام امامت تعریف بشه یا جانشین پیامبر باید با نظام خلافت تعیین بشه. اگر کسانی معتقدند که امام عصمت جانشین رسول الله با اوصاف الهی دلایلشون چیست؟ طبعا اونا میتونن سنت اجازه داشتن از قرآن دلیل بیارن یا از روایات پیغمبر دلیل بیارن. اگر این این میشه بحث کلامی یعنی یه عقیده اسلامیه با ماده قرآن و حدیث مورد بررسی قرار میره. و کسانی که معتقد بودن که نظام جانشینی رسول الله در روزه خلافته خب دلیل باید میبردن. اینا هم باید به یک عدله ای استدلاح ما در قرآن کریم یک رشته آیات داریم که استلاحاً بهش میان آیات متشابهات. مثلا فرض کنید ما در زمینه رؤیت پروردگار عالم سه تا آیه داریم علا که دو تا از اون آیات ظاهرا دلالت می کند بر نفی رؤیت لا تو داره کل و هو تو کل یا لم ترانی که اون زور الالجبل این دو تا آیه دلالت میکنن بر نفی رویت و یک آیه دیگه داریم در سوری قیامت که ازش استفاده میشه بر رویت میگه وجود یومید ناظره الاربه ها ناظره خب این دلالت میکنه زایران بر رویت حالا آیا واقعا خدا را در قیامت میشود دید یا نمیشود دید اهل سنت استناد میکنن به یک حدیثی که این حدیث میتونه داوری کنه بین این ستا آیه که پیغمبر فرموده اِنَّكُمْ سترون رَبَّكُمْ یوم القیامه کما تَرَوْنَا قَمَرَ فِي لَيْلَةِ الْبَدْ شما در روز قیامت پروردگارتون رو میبینین همانطور که ماه شب چهارده رو میبینید خب این حدیث میشه یک حدیث کلامی یعنی این حدیث با فرض صحت میتواند داوری کند بین اون تا آیه در این صورت وقت آیاتی که نفی رویت میشه باید بنوان یک آیه متشابه یه معنای مناسبی ماورش بکنی. از اون طرف در شیعه روایاتی نقل میشه که انالعیوم لاتشاهدهو به مشاهده الابصار، ولا چنالقلوب رعدهو به معرفت الاصار. یعنی دیدگان با مشاهده بصری خدا رو نمی‌بینند. قلوب در سایه معرفت آثار خدا رو درک می‌کنند. این حدیث در داوری میکنه بین همین سعایه در جهت نفی رؤیت ظاهری پروردگار آلم. خب دقت بفرمایید الان بعضی از روایات ما میشه روایات کلامی. برای که می بین بعضی از متشابهات قرآنی که سؤال برانگیزه انگیزه یه داوری هایی داشته باشه. و ما از این گونه روایات تا دلتون بخواد زیاد دلیم. در قرن اول مسلمانان با تدبر در آیات و با تدبر در بعضی از روایات سوالاتی برشون ترک میشه من حالا آره نمونه از این سوالات رو که سوالات قرن اول هست برای شما میگم شاید بعضی سوالات امروز باشه مثلا در زمینه خداشناسی ذات خدا چه ماهیتی دارد ذات خدا مثلا چه نسبتی دارد با بقیه ذاتها؟ آیا خدا قابل تصوره؟ آیا خدای تبارک و تعالی قابل تجسم این که می فرماید الرحمن و علال عرش سوا یعنی چی, چی؟ خدا چگونه بر عرش تکیه میده؟ یا مینشینه؟ این در ارتباط با خدا شناسیه صفات خدا عرش شود چه نسبتی با ذات خدا دارد؟ یه ده می گفتن صفات خدا خارج از ذات خداست، یه ده می گفتن صفات خدا این ذات خداست جبر و اختیار آقا انسان موجود مجبوریه یا موجود مختاریه ما خودمون سرنوشت خودمونو میسازیم یا سرنوشت ما از قبل مقدره خب یه حدیثی از رسول الله نقل میشه که پیامبر فرمودن از سعید و سعیدون فی بطن اومه. و شقی و شقیون فی بطن اومه آدم سعید یعنی سعادتمند از شکم مادرش سعادتمنده اصلا این سعادت تو پیشونیش باید که مهی است و اون کسی که بخبخته و اهل شقاوته اصلا همان شکم مادرش این مهر شقاوت بر پیشونش خورده. او از پیغمبر نعرام می‌کردن. واقعاً وقتی این حدیث‌ها رو می‌شنیدن به فکر می‌رفتن که این جوریه. یعنی سعادت و شقاوت از قبل تعیین شده، ثبت. حالا یه داستانی نغمه می‌کنن، یه داستانی نغمه می‌کنه البته شاید یه داستانی باشه. میگن که یک بار حضرت آدم با حضرت موسی ملاقات میکنه موسا به آدم گلگی میکنه میگه آقا چرا تو شکم میتونه نگرفتی و به اون شجره نزدیک شدی و ما رو بدبخت کردی چون کافی بود آدم یه خورده جلو شکمشون میگرفت و نزدیک اون شجره نمیشد خب بعدش اخراج از بهش پیش نمی آمد. بعدش دیگه بنی آدم همیشه خوشبخت بودن در ویش موسی گله میکنه به حضرت آدم آدم میگه که فرزندم از من گله نکن اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که من اون نافرمانی را مرتکب بشم یعنی از جبر این حدیث و این گفتگو از گونه ای جبر با ما سخن میگه که میخواد آدم از خودش رفعه اتها بکنه همش گردن من ننداز یه مقدارش منداز گردن خدا خدا هم اراده کرده بود که ما این نهی رو زیر پا بگذاریم و بخوریم و اصلا مقدمه انتقال ما به زمین فراهم بشه چون بعد از این ماجراست که آدم و افوا هبوت میکنن به زمین و از اول هم که خدا به فرشته ها گفته بود ان جایلون فل عرض خلیفه به من خیلی ایراد نگیر حالا ببینید واقعا مسئله جبر و اختیار یک مسئله کلامیه دلیلش چیه؟ دلیلش که وقتی که ما بارد قرآن کریم میشیم یک رشته از آیات از نوعی اختیار با ما میگوید. مثلا میگه کل نفسن به ما که ثبت نه هر کسی در گروه کاری که میکنه از اون طرف آیاتی از قرآن کریم بوی جبر میده میگه اصلا شما نمیتونید مشیت کنید جز اینکه خدا مشیت کرده باشه و ما تشاؤون الا ایشا الله رب العالمین خب این یه مسئله ای بود. ایمان ایمان چه ماهیتی دارد اسلام اسلام چه ماهیتی دارد؟ تفاوت اسلام و ایمان چیه؟ یک مسئله چیه یعنی همیشه مسلمون ها با هم صحبت صحب صحب صحب می که ویژگی اسلام چیه؟ ارکان اسلام چیه ؟ ویژگی های ایمان چیه؟ ارکان ایمان چیه گناهان کبیره و گناهان صبیره و معیار تمایز کبیره از صغیره این جزء مسائل کلامی قرن اوله واقعا هم مبتلا مبتلابه شدن چون مرتکب گناه می شدن می که این گناه جزء کبیره است یا جزء صغیره است چه صدمه ای به شخصیت اونها می زنه خب حالا فرض کنید من مرتکب گناهی شدم من با ارتکاب یک گناه حتی از سنخ گناهان کبیره ایمانم زیر سوال میره خب یه عده‌ای میگفتن که ارتکاب کبائر مساوی با کفر اینا خوارج بودن که مرتکب کبائر رو کافر میذنداشتن یه ادهی می مرتکب کبائر مؤمنه چون ایمان یک مسئله است و حساب ایمان به عنوان یک تصدیق قلبی جداست از عمل که یک رفتار بیرونیه بعد یک ادهیم بین خبارک و بین مرجعه موضع گیری که مثلا مرتکب کبائر نکافره آنطور که مرجعه خوارج می گوید آنطور که مرجعه می گوید مرتکب کبائر فاسبه است فاسبه است این نظر نظر کیا بوده؟ نظر معتصله بعد وقتی که می گفتن کبائر فاسقه می اما این فاسق نباید تا عبد در این حالت باقی بمونه اگر که فاسق توبه کرد ملحق می شود به مومنی اگر که توبه نکرد و مرد از نظر سرنوشت ملحق می شود به کافری. بنابراین این حالت فسق را که یک مرتبه می بین ایمان و کف ازش تعبیر کردن به منزلتون بین المنزلتین حالا چه میشه که اصلا این بحث ها به وجود میاد یک حدیث از رسول. من حالا این حدیث پایان ما رو براتون می‌خونم ان بعد از نماز ولی اجازه بدید ما به یکی دو تا مسئله کلامی دیگه اشاره بکنیم خلق قرآن یا قدیم بودن قرآن قرآن حادث است مخلوق است یا قرآن قدیم است از ازل وجود داشته این مسئله کلامی گرم دومه اگر من به شما بگم به خاطر اینکه قرآن قدیمه یا قرآن حادثه چه خونها ریخته شد در اسلام یه عدهی میگفتن قرآن حادثه اینا تکفیر میکردن معتقدان به قدیم بودن قرآن بعد در یه ای معتقد بودن که قرآن قدیمه اینا تکفیر میکردن معتقدان به حدوث قرآن رو و خونهها سر این موضوع متاسفانه ریخته شد و مسلمانان زیادی سر این موضوع تکفیر شدن همانطور که مسئله امامتم سبب جنگ های زیادی شد در اسلام و یکی از علمای کلام دنوان معتظله، شهرستانی میگوید در اسلام هیچ شمشیری به اندازه شمشیر بر سر اصل امامت از نیام کشیده نشد این در شرایطیه که رهبران خردمند شیعه مثل امام باقر و امام صادق و رهبران خیرمند سنی هرگز رازی نبودند که سر مسائل کلامی و اعتقادی حتی مسلمان ها به هم توهین کنند تا اینکه بخوان خدای ناکرده صداشون رو بر هم بلند کنن تا اینکه خدای ناکرده بخوان همدیگه رو تکفیر کنن تا اینکه خدای ناکرده بخوان شمشیر علیه هم بکشم رهبران خیردمند شیعه و سنبی آقا اینا مسائل علمیه در مسائل علمی شما دلائل تو بیار مام هم اون میاریم دلایل هر که قوی تر بود اونایی که میشنون انتخاب میکنن چرا دیگه بخوام همدیگه رو تکفیر بکنیم ما که برادریم با هم اشتراکات شیعه و سنی که بیشتر از اشتراکات مسلمان با یهودی و مسیحیه خدا به اهل کتاب میگوید یا اهل کتاب تعالوا او ال کلمت سنا بیننا و بینكم الله نعبد الا الله ولا شرک به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من الله وقتی که اسلام میتونه اهل کتاب رو به وحدت و اتحاد فرا بخونه خب شیعه و سنی که اشتراکاتشون بیشتره با مسلمان با یهود و نصارا. از اینجوریشون میده که متاسفانه اگر بحث های کلامی سر از جنگ و جدال در آورده شما باید رد پای سیاست رو ببینید یعنی این حکومت هاست و سیاستان که سعی میکنن مسلمانان را به جور هم بگذارند. ولی مسلمان‌ها ها خودشون باشن و رهبران عاقلشون این اتفاقات هرگز نمیفتند. خب، الان چون از آن دارند میگن ما عدب میکنیم و به مدت یه رو کلاس رو تحلیل می کنیمیم که انشاالله، از فضیلت نماز اول وقت هم استفاده کنیم برمیگردیم و انشاءالله اداله سخنه مال الرحیم و به این استعین و اینهو خیر و ناسم و موین و الله علی سیدنا محمد و آل تاهر. الله اللهم سبحانه و عمد و آل محمد خب از کنم خدمتون در ادامه سخن قبل از نماز که انشالله خداوند قبول کنه از همگی نماز اول وقتتون رو بنده میخوام در این ساعت یکی دو تا مطلب رو عرض بکنم لازم شد یک مثال هایی هم براتون بزنم اولا با فرض این که ما الان دیگه متوجه شدیم این که علم کلام یعنی دانش مربوط به اصول عقاید اصول عقاید معمولا در برابر سروع عقایده مثلا در بین مسلمان ها جا افتاده که مسائلی از قبیل خداشناسی نبوت شناسی امام شناسی معاد شناسی اینا رو به عنوان اصول عقاید ذکر میکنن و دانشی به نام مثلا آشنایی با احکام حلال و حرام عبادات اینها رو فروع عقاید ذکر میکنند که همون علم فقه باشه بنابراین علم کلام یعنی دانشی که مربوط به اصول اقایده که حالا نمونه ای از اصول عقاید رو براتون گفتم این علم کلام میتونه دو گونه باشه یکی کلام معصور یکی کلام غیر معصور یعنی کلام اجتهادی کلام استنباطی اگر که علم کلام به شکل معصور یا روایی باشه ما میگیم می که اساس اسلام بر خداشناسی است چرا که خداوند میفرماید فلان قلوه الله و عهد. اساس مثلا اسلام بعد از خداشناسی بر نبوت چنان که میفرماید فرماید رسولاً مبشرین و منظرین لالا یکون الناس الله وجتون بعد رسول یکی یکی عقاید رو میگیم استناداتش رو هم ذکر میکنیم از آیات و روایات در اینجا کلام کلام معصوره یا کلام کلام اقصریه مثل تفسیر که تفسیر تفسیر معصور و اثری ما داشتیم و بعد تفسیر اجتهادی داشتیم اگر کلام کلام غیر معصور باشه این حاصل استدلال‌های متکلمانه یعنی متکلمان با استفاده از عرض کنم خدمتتون آیات و روایات یک اعتقاد ای را می بیند اعتقاد نامه ای را می مید که ممکنه برای جمله جملهش دلایلی از قرآن و روایات تو ذهنشون باشه و اگر لازم شد برای شما نقل میکنن ولی ظاهر اون منشور اعتقادی ظاهر منشور اعتقادی عبات یک مت اگر قرار شد که کلام استنباطی باشه به این معنی که من عرض کردم مثل تفسیر اجتهادی کلام هم اجتهادی و استنباطی باشه اون وقتی که ما در اسلام به موافقان و مخالفان علم کلام برخورد میکنیم اگر قرار باشه که کلام از نوع روایی و محصور نباشه از نوع استنباطی باشه اجتهادی باشه او وقتی که ما شاهد این میشیم که در اسلام یک ادهی موافقه علمی کلام میشن یک ادهی مخالفه علمی کلام میشن برای کلام استنباطی نوعی برداشت یک متکلمه از آیات و روایات ما در اهل سنت گروه هنابله رو و گروه مالکیه رو جزء مخالفان علم کلام می شونست. به این معنایی که کلام عبارت از برداشت و استنباط از آیات و روایات باشه چنان که در شیعه گروهی موسوم به اخباریون رو جزء مخالفان علمی کلام شناسی، علتش اینه که اهل حدیث سنیها و اخباریون شیعه اساساً غیر از نص آیات و روایات اینا قائل به هیچ برداشتی و تفسیری از آیات و روایات نیستن خب اینا معتقدن که شما منشور عقاید اسلامی رو میخوای بیان کنی آیات و روایاتش رو فقط بخون فقط بخون یه حق تفسیر نداری تو با کمک عقلت یعنی علم کلام به معنای یک علم استدلالی با ماده آیات و روایات برای اهل حدیث اهل سنت جزء علوم مضمومه چرا که برای اخباریون شیعه جزء علوم مضموم بوده اینجاست که علم کلام در اسلام موافق و مخالف داره مثلا در اهل سنت معتزله جزء موافقان علم کلامه در شیعه اصولیون و متکلمین مثلا علامه هلی یک متکلم خاجی نصير طوسی یک متکلم شیخ مفید همانطور که عرض کردم در زمان خودش یک متکلم بوده و به گفته ابن الندیم اصلا رئیس متکلمان بغداد بوده در حالی که اخباریون در قرن دهم و یازدهم ده اینا فتوا به حرمت علم کلام میدادند در حال اینم یک سخنی در این خصوص که بدونید که علم کلام از دانشهای اسلامی که موافق و مخالف به هم میزنه و مخالفان علم کلام چه در شیعه چه در اهل سنت معمولا کسانی بودند که گرایش حدیثی قوی داشتند و اینا با گرایش حدیثی قوی معتقد بودند که غیر از خدا و پیغمبرش که از عقاید برای ما حرف میزنه دیگه ما به عنوان متکلم حق تفسیر آیات اعتقادی رو نداریم حق برداشت های کلامی رو نداریم این راجع این مطلب اما مطلب دوم میخوام اولا یک حدیثی برای شما بخونم از صحیح بخاری و صحیح مسلم که این حدیث یکی از منشأهای علم کلام تو یک مسئله کلامیه حالا دقت بفرمایید من این حدیث رو براتون بخونم بن جبل از پیامبر اسلام روایت میکنه که قال رسول الله من شهدا الله اله الا الله و محمدا رسول الله الله الله محمد حرم الله عليه الجنه اگر کسی شهادت بدهد الله خدا یکیست و محمد هم فرستادی او هست حرم الله علیه نار ببخشید من چیز دیگه گفتن حرم الله علیه نار خداوند آتش را بر او حرام ماز ابن جبل میگه که یا رسول الله و این زن او و این سر او حتی اگر قائل vel la ilaha illa و نبوت پیامبر اسلام مرتکب زنا و سرقت بشه پیغمبر میفرماید و این زنا و این سرقه دوباره دوم دوباره. و این زنا و این برای بار دوباره باز پیغمبر میفرماید بله بار سوم یه علی رغم میل خب برای ماز ابن جبل از خوشحالی پر در میاره خوشحال میشه دیگه رسول الله میفرماید که من شهده الله اله الا الله و ان محمد رسول الله حرم الله علیه نار خدا آتش رو برو حرام میکنه بعد اینگه حتی اگر مرتکبی کارا بشه باز پیغمه میاره یاره. آره این خوشحال میشه پردر میاره میگه یا رسول الله افلا و الناس اجازه میده به مردم بگم پیغم من پرمودست به مردم نمید ازن یتکلو ازن یتکلو یعنی چی؟ یعنی کار خودشون رو واگذار میکنن به خدا میگن خدا که خودش گفته خدا که خودش گفته که هر کسیش شهادت بده به یگانگی خدا و رسالت و محمد من میبرمش تو بهش آتش رو برو حرام میکنم عمر خودش رو دیگه واگذار میکنه یعنی کسی نماز, نماز نمیخونه یک کسی زکات نمیده کسی روزه نمیگیره تازه از این طرف مرتکب زنا و سرقتم ممکنه بشه برم با آزب نجبلم سرسداشو در نمیده تو پیغمبر بشونیست من به تو گفتم ولی کس و اخبرم آزو اند موتهی تأثمان این دنباله حدیث ها و اخبرم آزو اند موتهی تأثمان یعنی چی؟ ما این راز رو تو دل خودش نگه داشت داشت تاش تا زمانی که خواست ببیره در زمان مرگ از احساس گناه کرد تأثمان از اس میاد احساس گناه کرد که پیامبر اسلام یه بشارتی داده یه وعدهی داده خب ما این راز رو ببریم زیر خاک ویز بگین به مردم که اسلام چنین رحمتی رو داره و پیغمبر چنین بشارتی رو داده اون موقع گفت و اخبره معاوض و اندبوته ای خوب خب این حدیث هیچ گونه قیبی نداره که آقا جان شما وقتی گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله ما تو اسلام نمازم داریم زکاتم داریم تازه را نماز و زکاتم، اساس در روز قیامتم میگن که از سلاط و عمود و دین این قبلت قبله ما سوا و ان ردت رده ما سوا بقیه اعمال ما را هم با نمازمون میسنجن اگر نمازمونم پذیرفته نشه بقیه هم پذیرفته نمیشه خب این یکی از روایاتیه که به معنای واقعی روایت کلامی یعنی میخوام بگم چطور مباحث کلامی ریشه در بعضی از روایات داره به صورت مستقیم و یه بحثی رو در بین مسلمانان به وجود آورد که رابطه ایمان و عمل چیه؟ رابطه ایمان و صدور کبائر چیه؟ آیا آقا من اگر که با حفظ شهادت این مرتکب کبائر بشم ای زر... به مقام ایمان من میزنه که من ساعت پیش براتون گفتم گفتم توی این مسئله چار تا نظر به وجود میاد حداقل سه سه تاشو براتون گفتم یه ای به نام خبارش میگن مرتکب کبائر کافره کافرم که نمیتونه بریتون بهشت بنابرای اینجاش تو جهندنه یه دهی میگن مرتکب کبائر معامنه یعنی کبائر لطمه ای به ایمانش نمیزنه که اینا عبارت از گروی بودن به نام مرجه یه دی بین این دوتا میگفتن مرتکب کبائر فاسقه و فاسق باید تصمیم بگیره که ملحقه به مؤمنین بشه با توبه یا ملحق به کفار بشه با عدم توبه شفاعت مفاعتم هم نداری اصلا به چیزی به نام شفاعت هم به معنایی که حالا بقیه مسلمان ها معتقد بودن، معتقد نبودند. اما امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ امام صادق فرمودن برای که یک داوری کنن به این چطور یک مسئله کلامی جوابهای مختلف داره امام صادق فرمودن مرتکب کبائر مومن نیست چون ایمان با گناهی کبیره جمع نمیشه الایمانو حیط الله ولا یعصا حقیقت ایمان به اینه که خدا مورد معصیت قرار نگیره و خدا مورد اطاعت قرار بگیره برابری ایمان با گناه کبیره قابل جمع نیست این یک مرتکب کبائر کافر نیست به این دلیل که شهادت این میده اشهدو الله اله الا الله و اشهد انم محمد رسول الله میگه خب این دو مرتکب کبائر فاسقه به شرط اینکه که گناه بکنه برای شاید بعضی ها مرتکب کبائر باشن علمان گناه نکنن پس نباید بهشون بگیم فاسق و مهر فسق رو بزنیم تو وقتی شون. ده پلوی پشت سرشونم خراب میشن توبم نمیتونم بکنن امام صادق به ما یاد دادن که مرتکب کبائر مسلمان هامادا میگه شهادت اینشو میگه چیه؟ مسلمان. مسلمانه فرمودن اسلام به مسابه یک لباسه ایمان هم به مسابه یک لباسه شما الان این لباس, لباس مؤمنیه لباس زیرت لباس اسلامیه کسی که گناهی مرتکب میشه این لباس ایمان از خنش میفته اما لباس مسلمانی برقامت او هست به مجردی که توبه میکنه لباسی روی لباس او اضافه میشه یعنی مسلمان بود به مقام ایمانم ارتقا پیدا میکنه یعنی همواره انسان انسانی که شهادت میگه بین اسلام و ایمان در نوسانه این اون داوری امام صادق علیه السلام هست. به این میان مس... این, این که من به شما میگم ماهیت ایمان یک مسئله کلامیه ماهیت اسلام یک مسئله کلامیه و اینکه واقعاً واقعا صدور کبائف چه نسبتی دارد با اسلام یا ایمان من در اون اوجی که یک عده ای میگفتن کافر یک عده میگفتن فاسق یک عده ای میگفتن مؤمن امام صادق فرمودند کسی که با شهادت اینش مرتکب گناهی میشه او مسلمان هست یعنی جنبه مسلمانیش رو حفظ میکنه. اما از اون طرف اون روایت رو هم که از قول معاذب نجبل و از رسول الله گرچه در صحیح بخاریه یا در صحیح مسلمه خب از نظر منطق فقه الحدیثی حدیث عامیه که تخصیص میخوره به کسانی که عمل صالح انجام میدن یعنی در علم فقه الحدیث میگن این حدیث به عمومیت خودش باقی هست تا وقتی که تخصیصی نخورده اگر تخصیص بخوره اون کسی که شهادت میده به لا اله و محمد رسول الله به مؤمنین پاک دامن ما میگیم اراده رسول الله این بوده که بالاخره مؤمن گرچه زنا و سرقت بکنه باید عمل با عمل صالح جبران بکنه اون بدی رو با فرض که ما حدیث معتبر بشماریم بگیم چون تو در صحیح بخاریه حدیث و صحیح بدونیم ولی به وسیله احادیسی که تخصیص میخوره باید ما به تخصیصش عمل کنیم به خاطر که پیغمبر و ائمه که متناقض حرف نمیزنن دقت کردید این راجع به این که ساعتی پیش براتون گفتم حالا یه روایتی من براتون میخونم که منشع یکی از بحثهای کلامی مشغور میشه در عالم اسلامی و چهار گروه از مسلمانان به چهار گونه در صحبت میکنن خب من امشب میخوام یه گزارشی برای شما بدم که چگونه محدثان با استفاده از احادیث اینا میتوانند آثار کلامی بپردازن چه در شیعه چه در اهل سنت؟ ببینید یکی از محدثان بزرگ شیعه چنان که می دانید شخص است نام شیخ صدو شیخ صدو یک کتابی داره به نام العتقاد که این به اعتقادات هم مرور برای جایگاه عدیس رو شما در علم کلام متوجه بشید یکی از مطرون، حاضر و آماده کتاب علیه اعتماده. که معروف است به اعتمادات سلوم وقتی کتاب رو میگیدید که هفته دشته از صحفم نیست حالا من سعی میکنم برای هفته آین ندیارم سعی کنم این کتاب رو انشاءالله وقتی که این کتاب رو نگام میکنید شیخ السعدی میگویند اعتقاد ما شیعه این است. شروع میکنه به اعتقادات شیعیان رو بیان کرده، بیان کردن جمله جمله این اعتقادا یک شواهدی از قرآن داره یا یعنی چون اون که از قرآن و روایت خونده بعدش به عنوان حلق اعتقاد و اعتقادات این یک نسخه کلامی یعنی نسخه نسخه کلامی در چیه خب شما میدونید که ما یک حوزه قم داریم یک حوزه بغداد. در حوزه قم کلام بیشتر نقلی به دلیل هدیثگرای در حوزه بغداد کلام بیشتر عقلی به دلیل اعقلگرایی این یکی از تفاوت‌های حوزه قم و حوزه بغداد درو اما تو خوب در حوزه بغداد که من حرز می‌کنم تلاب بیشتر احلی بدلیده این, این احل گراهی بغدادیا ها منحصره هم نبوده ها مثلا قدیه‌تری متکلمان معتظیی این تو بغدا بوده مثلا قاضی عبدالجببار چون بغدا دستن می‌تلبیده یه مکانی بوده که اصحاب مذاهب با هم بحث و مناظره این کتاب اعتقادات صدوق در حوزه برگزار می دست شیخ موفید بدلیل دلیل گرایش کلامش بیشتر با عقل و استدلالهای عقلی همراه احساس میکنه که بعض از عقاید شیخ صدوق رو قبول کنه و باید نقد بکنه مثلا شیخ سادوگی روایت رو دیده و خونده که الارواح خلق قبل الاجسام آم ما یه اجسام داریم، یک ارواح دارین خداوند هزار سال قبل از اجسام ارواح رو آفریده خب باور کرده؟ باور کرده که خلقت رو مقدم بر خلقت جسمه اونم به واسده دو دوزار سال شجر مفید که در بغداده این اونه رو قبول نداره قبول نداره و میگه که این چیزی که استاد ما ابو جعفر میگه ابو جعفر شیخ صدو یه خبر واحده خب خبر واحد یه خبر واحد زنی محلوم نیست که خبر ماهی درست باشه یا درست نباشه اون معتبطه که خبر ماهی زمینی نباید منشعه عقیده بشه بنابراین شیط مفید به همی راحتی قبول نداره که خدا ارباح رو دو زواستا قبل از اقسام آفر میدوشه یعنی شما یه وقتی یه حدیث رو قبول می کنید ایش منشعه یه حدیث یه وقتی حدیث رو قبول ندارید ایشه منشعه عقیده مخالطه بنابراین وقتی که این کتاب اتقادات شیخ صدور میوفته دست شیخ مفید میاد یک نقدی بر این کتاب میذاره و میشه یک کتاب جدیدی اسمشون میگذارد تسخیب الاعتقاد حالا اعتقادات صدور یه متن کلامیه که معرف کلام اوزه اندهی قم در غرم چورتون تصحیم و اعتقادم یک متن کلامیه که کلام کلامی شیعتون بغداده در همون غرم چورتون خب حالا این به شیخ صدوق و شیخ مفید و یک مناظره علمی بین این دو بزرگوار که لذتش به اینه که شما اعتقادات صدوق و اعتقادات شیخ مفید رو با هم بخونید من اینشالله سعی کنم یادم باشه هفته آینده یا رفضل کلاس اما این کتاب امالی شیخ صدوی در کنم عمالی شیخ صدوی عمالی, عمالی یه نوع کتاب حدیثیه که در اون محدث به جای این که در جلوت هی نفر شش نفر بخواد درس بده، عرض خدمت اون روز جمعه یا روز ای در یک ای در یک مسجدی که شده ممکن بود کمصد نفر از اومنین قایه نمبرشی بدشید و این چیم رو میکرد روایاتی که عامل منفعه باشه به لرد همین به بعه مردون میخونده و تفسیر می کرده با یعنی روایات رو میخونده فقط میرفته یه تفسیرش رو میذاشد با عهده خود مردون این کتاب‌ها رو می‌گن عمالی یا این کتاب‌ها رو می‌گن است این کتاب عمالی شیخ صدو نود هفت مجلس داره و هر مجلسش هم تاریخ داره تاریخ داره مثلا فرض کنید المجلس و الخامس و وسطون یوم الجمعه لتسعن خلاونه من جماد اولا من سنت سمانن و ستینه و فلطمعه یعنی سی و شست و هشت نه روز مونده به ماه جمادی رو ببینید؟ چقدر دقیقه؟ بعد حد سنا، حد سنا مثلا فرز می سنا، توضیح بره خب؟ این این بیشتر هفت، بیشتر ترجمه نه، این المجلس الخامس و سپون این رو تنگیمشی بود اشتباه شدهش نوه نو رو هفت چی کرده؟ خب میگاه این اولا خواستم برای شما ماهیت کتاب ها یه رو توضیح بدهم این مجدس ۹۳ میشه این مجدس ۹۳ گفته یا ما جمعه هستانی عشر من شعبان دوازده شعبان سی سد خب روز جمعه دوازده ماه شعبان سی سد و شیخ, مفیج... شیخ صدوق میان تو مجلس مثلا خود رو آماده کرده که یه رشته رو بخونه این اسلام مجدس بزرگان شیعه میان بیان آقای شیخ صدوق بله آقا امروز حدیث نبود یعنی جدیسنگیم مرامنامه شیعه رو توضیح بده بگو شیعه یعنی چی؟ نفت بعد این مرد با احاطه ای که داره بر آیات و روایات میگه خوش خود حدیث لگم شیعه رو تعریف بکنم مرامنامه شیعه بر شما بگم چشم شیعه یعنی این این شیعه یعنی, یعنی کلام شیعی. کلام شیعی. وقت من که این مجلس 93 رو مطابق کردم، این مجلس یه بخشش کلام شیعه، یه بخشش فقر شیعیه، یعنی اون اقاناتی که یک شیع قائل در شوال روز انجامه. بعد جمله به جمله این، یا پشتوانه ای از آیات دارید یا پشتوانه ای از رمایات دارید نقش حدیث در علمی که علاقه دارید سال چند میرید؟ هنگ دارم گذشته خب پس حالا بروید اول مجلس رو میگم هفته آینده فراسیاش رو براتون می میخونم میگم وچتا معرفی ها زمینی امکه داشت چیه که جعفر؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسا اهل مجلسهی و مشایخ در این روز اهل مجلس مشایخ دور شیخ صدور گرم شدند فس عربو ازش خواستم این یومی علیهم فس دین الامامیه امروز برای ما حدیث برا نکن امروز برای ما مشخصات دین امامیه رو پیدا بکن فَسَعْلُوهُ عَيْنُوبِ عليهم وَسْفَدِينَ الْإِمَامِيَتِ عَلَلْ ایجازه وَنْ اِخْتِصَارِ فَقَالَ از الله تعالى عَلَيْهِمْ و چشم شما سفارش میدید چش دین الامامیت قُوهَ الْإِقَرَارُهُ به الله ذكره و نفی و تشریح انغوه و تنظیح اما لا یعنی ببینید این ی برای که در بین مسلمان یه عده رو میگن یا مجسمه یعنی به خدا متقلن در این که خدا رو شدید میکنن با یک موجوداتی اصلا اسمشون شده مشبه و مجسمه ولی شیل قصد یه اقرار به تورید خدا با نفی تشبیح و ترزید ما, تشبیح ما تشبیحی نیست. ما تجسیمی نیستیم و نفل تشبیه آن و تنظیح او امالایی غبه و اقرار به انبیاء الله و رسولهی و حججهی و ملاحکتهی و کتبهی و اقرار به انمو حمدن و و سید الانبیاء و مرسلین و ان او رو من هم و من جمین اله ملاحکت ببینید این یک مسئله کلیه مرتضله می گفتن لازم نیست پیغمبر افضل از ملاقی باشه. یا آمیدوی داشتم. حالا کی گفته پیغمبر باید از همه ملاقی افضل باشه؟ یه مسئلهی کنونی دیگه. ولی شیعه معتقده پیغمبر افضل از همه ملاقی که هست. اینا همه قسطنت داره. یا از قرآن یا از روایات. و انه او خاتمون نبیین. فلا نبیه بعد او ایرام یومدونی آمد. و هنده جمعی علم و مرسلیم وده ایمه افضل من مینا به مراقی کرد خب ای ایمهی به اختصاص به شیعه داره شاهد سنیا که یه با شیعه مشترک نباشد حالا میخوام بگم چطور متن کلامی به وجود بیار در سایه آیات و آیات چطور متن کلامی به وجود بیان در سایه استفاده از آیات و روایات حالا که امشب امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه و ما انشالله هفته آینده که اومدیم زمنی که یه بخشی از این ادامه منابع روایات کلامی رو در شیعه و سنی براتون معرفی خواهیم انشالله خواهیش میکنم